به نظر شما کلیت های رهبری فعال کدامند؟ زکات، حکمت، اشتیاق یا عطیه الهی؟ به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. در جریان مطالعاتمون بزرگترین کتاب دنیا رو بررسی می‌کنیم چون این کتاب خداست. تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه ما الان در حال مطالعه خروج هستیم. دومین کتاب از کتاب مقدس. زمان شما ارزشمنده و من اینو برای خودم افتخاری میدونم که تصمیم گرفتین امروز به عنوان بخشی از کلاس با ما باشین. در درس امروز یاد میگیریم که چطور خدا موسی رو با مختن چهار راز روحانی برای رهبری آماده کرد. این چهار راز روحانی نه تنها برای موسا کار داشت، بلکه برای من و شما در زندگیمون هم کاربرد خواهد داشت یاد گرفتن و به کار گرفتن این چهار راز روحانی برای ما حیاتی هستند بیاین در درس امروز از مطالعه کلام خدا با معلممون همراه باشیم به کلاس دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید یک بررسی کلی و جامع از کتاب مقدس بررسی کتاب به کتاب این بررسی به شما کمک میکنه که کلام خدا رو درک کنید و در زندگیتون به کار بگیرید. من برای درس امروز خیلی هیجان دارم چون که حقیقتش گفتن‌گیزی درون هست. پس لطفاً برای این مطالعه خیلی مهم با ما بمانید. در ادامه بررسی کتاب خروج میخواهیم روی چیزهایی مثل مردم، مشکلات و نبی تمرکز کنیم. ما این کار رو همزمان با بررسی کتاب خروج شروع کردیم. در کتاب خروج ما گسترش قوم خدا رو میبینیم. این قوم خاص خدا. و همینطور. در کتاب خروج بر روی بزرگترین مشکلی که اونها داشتن که بردگیشان بود تمرکز کردیم. اصارت تلخشان در مصر خیلی پیشتر در بابهای دو و سه به نظر من تمرکز ما بر یکی از بزرگترین مردان خدا بود که جهان به خود دیده بود. موسی. او نبی هست که در خروج دو و سه از طرف خدا فرا خونده شده که منجی باشه که وکیل انسان باشه یا ای که خدا بتونه با اون این قوم را از اسارتشون در مصر نجات بده همونطور که بارها گفتیم این بردگی تاریخی در مصر یک سمبل تمثیلی از بردگی ما در گناه هم هست نجات از بردگی یا بندگی در مصر به طور تمثیلی تصویری از نجات ما هست همینطور به این معنی هست که موسی به طور تمثیلی یا سمبولیک به عنوان منجی تصویری است از هر انسانی که به عنوان وکیل یا وسیله به کانالی تبدیل میشه که از طریق اون خدا مردم را از اظارت گناه آزاد میکنه. ما میتونیم یک چنین شخصی رو یک مبشر یا سیاد جانها بخونیم. ضمن بررسی فراخاندگی و ماموریت موسا در باب دو و سه کتاب خروج دیدیم که خدا باید این مرد رو آماده می کرد و به او چیزهایی یاد میداد قبل از اینکه او رو یک منجی بکنه. خدا باید به او یاد میداد که او هیچ کس نیست. بعد خدا باید او رو متقاعد می کرد که او کسی هست و خدا باید به موسی نشون میداد که، میتونه برای کسی که میدونه کسی نیست چیکار کنه مهمتر از همه چهار راز روحانی بود که خدا باید با موسی در میون میذاشت تا او رو قادر بکنه برای بنی اسرائیل یک منجی بشه اگه امروز علاقمندید که منجی کسی باشید قبل از اینکه یک مباشر یا یک وسیله بشید که خدا بتونه کسی رو به وسیله اون از بردگی و اسارت گناهانش نجات بده شما هم باید این چهار راز روحانی رو یاد بگیرید من اگه این چهار راز روحانی رو ندونم نمیتونم به عنوان یک خادم کاری بکنم و نمیتونم ایماندار موثری باشم. من هم باید اونها رو مرتبا به خودم یادآوری کنم. چهار راز روحانی که خدا با موسا در میان گذاشته بود قبل از اینکه او بتونه منجی قوم اسرائیل بشه. اولا خدا باید به موسا این راز روحانی رو نشون میداد. موسا تو یک منجی نیستی اما من هستم و من با تو هستم. دوباره خدا باید به موسی نشون میداد موسی تو نمیتونی کسی رو نجات بدی اما من میتونم و من با تو هستم سومین راز روحانی که بعد از فراخواندگی موسی آشکار شد اینه موسی تو نمیخوای این قوم رو نجات بدی من میخوام این قوم رو نجات بدم و من با تو هستم بعد از اینکه معجزه بزرگ نجات واقع شد هیچ کسی لازم نبود که چهار چهارمین راز روحانی رو به موسی بگه اون راز این بود موسا تو این قوم رو نجات ندادی من اونها رو نجات دادم چون که من با تو بودم من نمیدونم که شما راجع به خدمتی که به اون بشارت میگیم چی فکر می کنید؟ راجع به یک وسیله بودن یا یک شاخه بودن که خدا میخواد به وسیله اون کارش رو پیش ببره چه احساسی دارید مثل شاخه ای که باید در تاک باقی بمونه بنا گفته عیسی در مسئله تاک من به این نتیجه رسیدم این چهار راز روحانی که خدا به موسی یاد داد تا موسی بتونه بنی اسرائیل رو نجات بده رازهای روحانی هستند که همه ما باید بدونیم اگر می‌خواهیم وسیله‌ای باشیم که خدا توسط اون کار میکنه خدا این چهار راز رو در بوته مشتعل به موسا یاد داد بنا ضرورتی خدا به او در بوته مشتعل گفت موسا تو منجی نخواهی بود من منجی هستم و من با تو هستم خدا همینطور در بوته مشتعل به موسا گفت موسا تو نمیتونی کسی رو نجات بدی اما میتونم و من با تو هستم. این راز دوم روحانی با شکست موسی آشکار شد. خدا این راز روحانی رو به مردان زیادی در عهد قدیم و جدید کتاب و مقدس آموخته. یکی از ابزارهای مورد او برای آموختن این راز روحانی که تو نمیتونی من میتونم برای مردان خدا شکست اونها هست. خدا از شکست ها استفاده میکنه که راز دوم روحانی رو به اونها یاد بده. حقیقت اینه که چون موسا سعی کرده بود و شکست خورده بود این کار کار خدا رو برای درمیون گذاشتن این راز دوم با او آسان کرد. راز سوم روحانی رو میشه اینطور شرط داد. موسی تو نمیخوای مردم رو نجات بدی، من میخوام اونا رو نجات بدم و من با تو هستم. قوم خدا در کتاب مقدس در این باره بسیار امین هستند. قوم خدا که خدا در کتاب مقدس فراخوانده که کاری بزرگ انجام بدن، تقریبا همه گفتند. من نمیخوام انجام بدم. موسی واقعا نمیخواست انجام بدم. اما بعد خدا گفت. من میخوام. پس بیا بریم. من با تو هستم. این تو نیستی که انجام میدی. این من هستم و من با تو هستم. این کاری نیست که تو بتونی بکنی. این کاریه که من میتونم و من با تو هستم. و این چیزی نیست که تو میخوای. چیزیه که من میخوام و من با تو هستم. وقتی خدا موسی رو معمور کرد او پنج بار اعتراض کرد. شما میتونید این اعتراض ها رو در باپای نخست کتاب خروج پیدا کنید اولین اعتراضش این بود من کی هستم؟ تو چرا کسی رو مثل من انتخاب کردی؟ همونطور که در جلسه قبلی اشاره کردیم موسا دلایل زیادی برای اعتراض داشت که بکنه او دشمن شمارهی که جامعه بود یک جانی بود یک یهودی بود یک شبان بود و یک فرزند ناسپاس و به نظر میرسه که مردی با لکنت زبان بود. دومین اعتراضی که موسا کرد این بود اونها از من سوالاتی خواهند پرسید که نمیتونم جواب بدم او احتمالا اینجا به بزرگان یهودی اشاره میکنه که باید نزد اونها بره و به اونها بگه اون منجی هست که از جانب خدا فرستاده شده اونها از من سوالاتی خواهند پرسید که نمیتونم جواب بدم وقتی شما به درمیون گذاشتن ایمانتون با دیگران فکر میکنید نمیدونم آیا شما همین اعتراض رو به خدا میکنید من کی هستم یعنی من یک باعث نیستم چرا من باید کسی باشم که ایمانم رو با کس دیگه ای در میون بذارم؟ پس شما معمولا این اعتراض رو دارید اونها از من سوالات الهیاتی خواهند کرد و من نمیتونم جواب بدم جالبه که وقتی موسی اولین اعتراضش رو کرد من که هستم خدا گفت تو مردی هستی که من انتخاب کردم و تو منو همراه خودت داری تو این هستی وقتی اون اعتراض رو کرد اونها از من سوالاتی خواهند پرسید که نمیتونم جواب بدم خدا گفت لازم نیست تو به سوالات اونها جواب بدی تو به اونها بگو که من هستم و اینکه من تو را نزد اونها فرستادم این تمام چیزی که باید به اونها بگی وارد مناقشات اونها نشو و سعی نکن به سوالات اونها جواب بدی اعتراض بعدی او این بود اونا به من باور نخواهند کرد اونها هرگز منو باور نمیکنند در این مرحله خدا به او درس عملی کوچکی داد به او گفت که دستش رو در گریبانش فرو ببره و دوباره بیرون بیاره وقتی او دستش رو بیرون میاره مثل برف مبروز شده بود خدا به او گفت که یک بار دیگه این کارو بکنه و دست او شفا یافت بعد خدا گفت آن چیست در دست تو و موسا گفت یک عصای شبانی همونی که خدا در سرتاسر سر خدمت موسی با اقتدار به کار گرفت و خدا گفت آن را بر زمین بیانداز وقتی موسی آن عصا را به زمین انداخت تبدیل به یک مار شد معنی تمثیلی به زمین انداختن فداکاری هست. به طور سمبولیک خدا به موسی می گفت وقتی مردمی که من تو را به سویشان می فرستم فداکاری تو را ببینند وقتی معجزه را ببینند وقتی آشکارا ببینند که تو فداکاری و من با تو هستم تو را باور خواهند کرد. نگران این نباش. اونا تو را باور می کنند. چهار رومین اعتراض او این بود که نمیتونست به خوبی بیان کنه. می تونست این باشه که شاید به علت لکنت زبان نمیتونست فسیح و شمرده حرف بزنه. شاید تپخ میزد و منمن من, و من میکرد وقتی به اولین اعتراض اون نگاه میکنیم به نظر میرسه همینطور بوده که گفت: من کی هستم. موسی مردی بود که خدا انتخاب کرد و همه این چیزها رو میدونست. شاید هم خدا به همین سبب او رو انتخاب کرد. ببینید خدا میخواست روشن بشه که این رهایی وقتی تحقق پیدا کرد در نتیجه قدرت خود او بود، نه نجذبهی چند انسان، به این دلیل او یک مرد ابری چوپان و شاید با لکنت زبان رو میخواست که به حضور فرعون بره و رهایی قوم او رو درخواست کنه وقتی قوم او رها شدن خدا نمیخواست کسی بگه اوه این موسا بود او خیلی سخنور بود من اونجا بودم وقتی آزادی قوم رو درخواست میکرد خیلی تأثیر گذار بود خدا نمیخواست اینطوری بشه به این دلیل بود تصمیم گرفت این مرد رو انتخاب کنه شاید موسی فکر میکرد تو هارون رو میشناسی او خوب حرف میزنه البته خدا میدونست هارون میتونه خوب حرف بزنه ببینید اگه خدا هارون رو میخواست او رو فرا میخوان و اینجاست که خدا سوالی بزرگ رو مطرح میکنه او گفت من دهان تو را ساختم اینطور نیست موسی کیست که زبان به انسان داد و گنگ و کر و بینا و نابینا را آفرید آیا نم این که یهوه هستم درک این برای بعضی ها مشكله فکر میکنم چیزی که خدا باز هم میگه همون درسیه که در زندگی یوسف دیدیم خدا محرکه های زندگی شما رو ترراهی میکنه شاید هرگز ندونید چرا اما خدا ما رو اونطور که میخواد خلق میکنه و خدا به موسی میگفت اگه من مردی فسیح میخواستم تو را فسیح میساختم دوستان من یادتون باشه خدا افراد شایسته رو فرا نمیخونه اونایی رو فرا میخونه که شایسته میکنه آخرین اعتراض موسا خشم خدا رو شعله ساخت موسی گفت کس دیگه‌ای رو بفرست حالا نمیدونم وقتی خدا به شما مأموریت میده که کسی رو نجات بدید آیا شما هم همین اعتراض رو نمیکنید و نمیگید کس دیگه ای رو بفرست نه منو من نمیخوام وسیله تو باشم من نمیخوام ای باشم که تو به وسیله اون کار کنی بسیاری از افراد در کتاب مقدس اونقدر روراس بودند بودن که به خدا بگن خدا یا من نمیخوام. این چیزی بود که موسی میگفت از یک جنبه این بهتره چون کسانی که میگن غالبا مشکوک هستن از یه مردی که دعوته یه کلیسای بزرگ رو رد کرده بود شنیدم که میگفت کسی که بتونه اون کلیسا رو شبانی کنه احتمالا نمیخواد و کسی که میخواد نباید شبان اون کلیسا بشه. باید یه چیزای مشکوکی باشه وقتی خیلی رقابت هست. چرا این همه مشتاقی؟ انگیزه ها چی هستن؟ وقتی کسی برای ماموریتی بزرگ دعوت میشه و نمیخواد میتونه نشانه ای از سلامت روحانی باشه. اما همونطور که خدا بر موسی آشکار کرد نهایتا این چیزی که خدا میخواد اهمیت داره، نه چیزی که شما میخواد. بعد از اینکه پیروزی میاد، بعد از اینکه نجات واقع میشه، چهار رومین راز روحانی که خدا میخواد همه قوم به خاطر دینه تو اون انسانها رو نجات ندادی، من نجات دادم چون من با تو بودم. یکی از مشایخ که از معلمین بزرگ کتاب مقدس هست، دکتر مانفرد گاتسکه، جمره بسیار عمیقی در رادیو بیان می کرد و من تصادفاً اونو شنیدم او می گفت وقتی عیسی سوار بر اون کره اولاغ در اون روز ایده نخل وارد اورشلیم شد و همه مردم فریاد کنان هوشیانا هوشییاننا خجسته بادو که به نام خداوند میآید حالا احمقانه نبود اگه اون کره اولاغ فکر می کرد که همه اون تجلیل ها برای او بود یکی از بزرگترین دام هایی که بر سر راه خدمت هست چیزی که ما بهش تحسین میگیریم وقتی خادمی پرسمره، ما پرثمر میگیم و دنیا موفق میگه. وقتی کلیسایی بزرگ و همه چی رو راهه یکی از دامهای خادمین تحسین هست. وقتی همه مردم از اون خادم تجلیل میکنند، به قول دکتر منفرد احمقانه است که اون کره الاق کوچک فکر کنه، همش به خاطر او هست. به عبارت دیگه احمقانه است که فکر کنیم وسیله باید ستوده بشه. ما فقط برای پیغام وسیله هستیم. مثل یک کدرو کوچک. کتاب مقدس راجب دو جور کرو صحبت میکنه. اولیش در کتاب اعداد یک اولاق سخنگویی هست که خدا به وسیله اون صحبت میکنه. خدا نتونست مردی پیدا کنه که اونقدر ایمان داشته باشه که اون رو ببینه یا اونقدر ایمان داشته باشه تا کانالی باشه که خدا به وسیلهش صحبت بکنه پس خدا به وسیله یک اولاق صحبت کرد. اون یک اولاق سخنگو بود. و بعد در م۱، شما نوع ای از الاغ رو میبینید خدا داش وارد اورشلیم میشد و به رسولان گفته بود که بروند و این خر الاغ خاص رو بیارن. او گفت که اونها اون رو در مقابل خانهای بسته خواهند یافت. او گفت اون رو باز کنید و بیارید. این امروز مثل دزدیدن ماشین کسیه. عیسی گفت اگه از شما پرسیدن دارید چه کار میکنید بگید خداوند به اونها نیاز داره و اونها خواهند گفت بفرمایید در خدمت شماست. به اعتقاد من پیغام داستان علاغ در اعداد 11 و حتی اونی که در متا 21 است چیزی مثل اینه امروز افسانه اسراج به کار خدا و اینکه چگونه خدا کارش رو توسط مردم انجام میده اون افسانه اینه خدا کارهای خارق العاده میکنه توسط مقدسینی عالی چون که اون مقدسین فوق العاده این یک افسانه است چیزی که کتاب مقدس به ما میگه و چیزی که تاریخ کلیسا به ما میگه اینه خدا توسط آدم های خیلی معمولی کارهای خارقلادهی انجام میده چون که اونها در دسترس هستند این حقیقت داره. بعضی ها خیلی قابلیت دارن و خیلی کم در دسترس هستند بعضی ها در مهارت ها ناتوان هستند و خیلی در دسترس هستند کتاب مقدس تحت عنوان این چهار راز روحانی به ما میگه که مهم نیست که شما مهارت های زیادی دارید یا کم. مهم اینه که چقدر در دسترس هستید خدا دنبال کسانی که در دسترس هستند، در کار خدا بزرگترین مهارت در دسترس بودن هست. اگه این او هست که کار می کنه، اگر این حقیقت داره که این ما نیستیم که کار می کنیم، این او هست، این چیزی نیست که ما بتونیم، چیزی که او می این چیزی نیست که ما می خواهیم، چیزی که او می اگه اگر همه اینها حقیقت داره، اون وقت بزرگترین مهارتی که ما می تونیم به خدا تقدیم کنیم، در دسترس بودن ما هست. خب چهار راز روحانی که خدا باید به موسی یاد میداد قبل از اینکه او منجی قوم اسرائیل بشه اینها هستند. شماره یک تو منجی نیستی بلکه من منجیم و من با تو هستم. شماره دو تو نمیتونی مردم را نجات بدی اما من میتونم و من با تو هستم. شماره سه تو نمیخواهی مردم را نجات بدی اما من میخوام و من با تو هستم. شماره چهار تو اون مردم رو نجات ندادی بلکه من نجات دادم چون با تو بودم از سمیم قلب دعا میکنم این رازهای روحانی در موقعیت واقعی زندگی شما معنی پیدا کنه حداقل اونقدر که برای من در زندگی و در خدمتم معنی داره اگه من به این چهار راز روحانی باور نکنم نمیتونم به عنوان یک مسیحی یا یک خادم انجام وظیفه کنم بعضی از ما با بالهای شکسته ایمان میاریم عیسی میگفت ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید من به شما آرامی میدم خیلی خیلیامون وقتی به مسیح ایمان میاریم بارهای سنگین داریم مشکلات زیادی داریم وقتی من ایمان آوردم 19 ساله بودم و مشکلات بسیار زیادی داشتم به خاطر اون مشکلات من عقده حقارت داشتم بعدها ها تخصص روانشناسی گرفتم و فهمیدم که این واقعا چیز پیچیده ای نیست من واقعا احساس حقارت میکردم اما تا مدت ها فکر میکردم که من عقده دارم چون تمامی اون بالهای شکسته رو داشتم خیلی خجالتی بودم اینقدر خجالتی بودم که وقتی داشتم میرفتم که در یک کلیسا استخدام بشم خانمی از شبان کلیسا پرسید ایشان عقب افتاده هستند یادم وقتی که جز کارکنان کلیسا شدم یکی از اولین مأموریت که به من دادند ملاقات با یه زوج بود خانم ایماندار شده بود همسر افسر نیروی دریایی بود و ایماندار نشده بود من و همسرم باید با اونا شام میخوردیم. من داشتم این مرد رو به مسیح هدایت می‌کردم من و او توی اتاق نشیمن بودیم و همسرانمون در آشپس خونه بودند من سردرد میگرن شدیدی گرفتم و مثل کاغذ سفید شدم و شروع کردم به عرق دیختن حالت تهوع داشتم در حالی که داشتیم صحبت می کردیم این مرد رو به من کرد و گفت شما حالتون خوبه گفتم فکر میکنم که لازم استراحت کنم او گفت خب بهتره شما روی همین کاناپه دراز بکشین او منو روی کاناپه دراز کرد و پارچه سردی روی سرم گذاشت من قرار بودو رو به مسیح هدایت کنم بعد مجبور شدم به خاطر بیماری بدون شام خونه رو ترک کنم بعدها اون مرد فکر کرده بود که چه چیز مهمی باید بوده باشه که من با اون حال بیماری میخواستم توی خونه او بشینم حتما باید ارزش شنیدن داشته باشه و اون نزد کسی رفته بود که میدونست ایمانداره و از او پرسیده بود که چطور میشه ایماندار شد و بعد او مسیحی شده بود وقتی من شروع به خدمت کردم چنین وضعی داشتم به این دلیل بود که نتونستم به عنوان یک خادم یا مسیحی یا یک انسان انجام وظیفه کنم تا زمانی که این چهار راز روحانی رو یاد گرفتم. خدا ما رو به عنوان خادمین و ایمانداران فرا میخونه که منجی باشیم. خدا میخواد که ما وسیله های انسانی باشیم که به وسیله ما دیگران نجات پیدا کنند من باید این چهار چیز رو یاد میگرفتم وگرنه نمیتونستم به عنوان خادم خدمت کنن. دوتای اولین من نیستم بلکه او هست و او با من هست دومیش من نمیتونم اما او میتونه و او با منه من با خدا رو راست بودم خیلی صباح بیدار شدم و گفتم خدایا من نمیخوام و بعد خدا میگفت به تو ربطی نداره من میخوام و من با تو هستم به سختی میتونستم باور کنم اما وقتی که متوجه شدم خدا از من استفاده میکنه و تحسین ها از هر طرف میامدن باید به مردم این چهار رازه روحانی رو شهر میدادم من این کار رو نکردم خدا این کار رو کرد چون او با من بود یک روز صبح در یک جلسه صبحانه جایی که چند صد نفر کتاب مقدس رو مطالعه کردن اونا سرپا ایستادند و برام کف زدند یکی از اون مردان گفت چیزی که اون سال بیشتر براش شوق کرده معلم بوده یعنی من چون که او توسط معلم این کلاسی مانورده بود اخیرا شنیده بودم که دکتر گاتسکی یک جمله بزرگ در رادیو گفته بود از این رو در پاسخ به اون تشویق‌ها بعد از نقل داستان دکتر گاتسکی راجب داستان کررولاغ کوچک که خدا استفاده کرد که با بلعام صحبت کنه، به او گفتم مرد. اگه خدا از طریق این جلسه صبحانه با تو صحبت کرده یا توسط این جلسه صبحانه وارد زندگی تو شده، خداوند رو شکر کن. از کررولاغ تشکر نکن چون که کررولاغ فقط حامل پیغام بود. وقتی این صحبت دهن به دهن شد من فکر کردم که مردم فکر کردند که من کرو هستم، بسیاری از خادمین برجسته منو برای نهار بیرون می بردن و وقتی که شروع میکردیم به خوردن نهار از من می آیا واقعا فکر میکننی که یک کرو اللای و یادم به اونها گفتم خوشحالم شمای که اینجا نشستید نه تنها من فکر می کنم که یک کرو الاقم بلکه فکر می کنم شما هم یک کرو الاق هستید. برای اینکه ما فقط حاملین پیغام هستیم و نباید اینو هرگز فراموش کنیم. این پیغامیه که ما بارها و بارها، در مطالعه شخصیت‌های کتاب مقدسی که خدا به کار گرفت، خواهیم دید. خدا امروز ما را به خاطر چیزی که هستیم به کار نمی‌گیره. او ما را علارغم چیزی که هستیم به کار می‌گیره. ما نباید این نقطه نظر و حقیقت رو فراموش کنیم که این خدا هست که کار نجاتش رو توسط ما انجام می‌ده. یک مثال عهد جدید هست که در راستای این تجربه موسی هست. در باب 15 انجیل لغ شما مثالی دارید از چیزی که خداوند به پتروس یاد می‌ده. همین چهار راز روحانی هستند این اولین باری نبود که خداوند و پتروس ملاقات می‌کردند اونها قبلا ملاقات شده بودند اونها قبلا همدیگر رو دیده بودند و خداوند پتروس رو به چالش واداشته بود دنبال من بیا و من تو را سیادت انسانها خواهم کرد در این زمان هنوز پتروس این چالش رو نپذیرفته بود اون روز صبح خداوند پشت به دریای جلیل ایستاده بود و جمعیت انبوهی برای شنیدن از او حضور داشتند پتروس تمام شب رو تور انداخته بود و چیزی نگرفته بود خداوند اجازه خواست که از قایق پتروس به عنوان تریبون استفاده کنه کلام میگه که پتروس موافقت کرد خداوند سوار قایق شد و نشاست و از درون قایق پتروس به مردم درس داد وقتی درسش رو تمام کرد رو به پتروس کرد آشکار بود در این شرایط خداوند به پتروس نگاه میکرده. ما درباره تعداد جمعیت چیزی نمیدونیم. به اونها چی یاد داد و یا واکنش چی بود برای اینکه چیزی که اهمیت داره این نیست در حالی که اون روز درس می‌داد خداوند میدونست که این مرد کسی خواهد شد که روح القدس توسط او در روز پنتیکاس بر روی زمین خواهد آمد عیسی میدونست که روزی این مرد در خیابان‌های اورشلیم راه خواهد رفت و مردم با دست و پا و بر روی زانوها به سوی او خواهند رفت تا اینکه شاید سایه این مرد بر اونها بیفته چون که اگر می‌افتاد اونها شفا پیدا می‌کردند ایسا همه این چیزها رو میدونست در حالی که اون مرد رو تماشا میکرد کرد که مشغول شستن تورهایش بود. حالا چالش این بود که خداوند چطور این مرد رو که هیچ ماهی نگرفته بود برای خودش انتخاب کنه. او تمام شب رو تور انداخته بود و چیزی نگرفته بود. او شکست خورده بود. درست مثل موسی او رو به داخل قایق برگردوند. چطور او رو به داخل قایق برگردونه تا بتونه انسانها رو سید کنه دو کلمه آخر آیه ده پنج کلمات محبوب من هستند چیزی که بهشون میگیم معموریت بزرگ ایسا به پتروس گفت انسانها رو بگیر پتروس دنبال من بیا و من به تو نشان خواهم داد که چطور انسانها رو سید کنی برای اینکه خداوند این مرد رو که نتونسته بود ماهی بگیره انتخاب کنه و او رو تبدیل به مردی کنه که بتونه انسانها رو سید کنه باید به او چهار چیز یاد میداد باید به او این راز روحانی رو یاد میداد پتروس تو ساجات نیستی من ساجات هستم من در قایق تو هستم من در زورق تو هستم وقتی اونها بالاخره با پیشنهاد خداوند رفتن ماهی بگیرن، پتروس واقعا نمیخواست وقتی اونها به جایی رسیدند که آبهای عمیق وجود داشت خداوند گفت تورها رو برای یک سید بزرگ بیانداز پتروس سعی کرد رو متوقف کنه و گفت استاد ما تمام شب تور انداختیم و چیزی نگرفتیم من معمولا تصور میکنم که حدود سی ثانیه سکوت در اونجا بوده در حالی که خداوند به او خیره شده بود، بعد پتروس گفت ارادی نداره، به خاطر حرف تو من تور رو میندازم. ما داستان رو میدونیم تور از ماهی پر شد. قایق پتروس نزدیک بود غرق بشه. دوستانش اومدن که کمک کنن و قایق اونها هم نزدیک بود غرق بشه. خداوند سعی می‌کرد به پتروس یاد بده، پتروس اگر بخواهی انسان‌ها رو سید کنی، باید چیزی رو درک کنی. من صياد هستم، تو صياد نیستی. پتروس تو نمیتونی انسانها رو صید کنی تو حتی نمیتونی ماهی بگیری تو نمیتونی انسانها رو صید کنی اما من میتونم و من در قایق تو هستم تو نمیخوای انسانها رو صید کنی پتروس نمیخواست به ماهیگیری بره درست مثل موسا که نمیخواست این قوم رو نجات بده عیسی گفت من میخوام در کتاب اعمال رسولان ما دوباره چهار راز روحانی رو میبینیم که در زندگی پتروس به کار گرفته شده پتروس تبدیل به یک سیاد بزرگ انسان شده و به یک رهبر بزرگ کلیسای عهد جدید تبدیل شده. او در روز پنطیکاست ای کرد و سه هزار نفر نجات پیدا کردند. او صياد بزرگ انسان بود. او چطور یاد گرفت که سیاد انسان باشه؟ ما جواب این سوال رو در لغا پنج پنج می‌بینیم. وقتی عیسی این چهار راز روحانی رو به پتروس یاد داد، پتروس تو سیاد نیستی، من صيادم. تو نمی‌تونی ماهی یا انسان صید کنی، اما من می‌تونم. پتروس تو حتی نمیخوایم ما من میخوام وقتی این واقع شد لازم نبود کسی به پتروس بگه پتروس تو این کار رو نکردی عیسی این کار رو کرد چون که او در قایق تو بود من واقعا اعتقاد دارم که این چهار راز روحانی خیلی حساس هستند اگه ما میخوایم کسی باشیم که خدا به وسیلش کار کنه فراخانی و ماموریت موسا مانند فراخانی و ماموریت پتروس این رو به تصویر میکشه این نقشه خدا هست که قدرت خدا رو در قوم خدا به کار بگیره برای انجام هدف خدا بر اساس نقشه خدا برای انجام این قوم خدا باید این چهار راز روحانی رو یاد بگیرن یک بار داستانی راجع به یک ناخدا شنیدم که های بزرگ رو به لنگرگاهشون هدایت میکرد. او یکی از بهترین ناخداها بود او در اتاقش یک گاه صندوق داشت و هر روز صبح قبل از اینکه سر کار بره از توی صندوقش جعبه سیاهی رو بیرون میآورد. از توی صندوق سیاه تکه کوچک کاغذ سفیدی در می آورد و اون رو خیلی مشتاقانه نگاه می کرد بعد میرفت سر کارش. او این کار رو روزها پشت سر هم و روزها پشت سر هم انجام میداد او به زنش هم نمی گفت که در اون کاغذ کوچک چه نوشته شده. بعد از اینکه این, این پیرمرد شریف مرد، زنش جعبه رو باز کرد و تکه کاغذ سفید رو از توش در آورد. اینها کلماتی بودند که بر روی کاغذ نوشته شده بود. بندر در سمت چپ کشتی در راست من صندوقی در اتاق نشیمنم ندارم اما اگه داشتم و اگه جعبه سیاهی در اون صندوق داشتم و یک تکه کاغذ سفید در داخل اون این کلمات رو بر روی کاغذ مینوشتم من نیستم بلکه او هست من نمیتونم اما او میتونه من نمیخوام اما او میخواد من انجام ندادم بلکه او انجام داد امیدوارم همونطور که موسی یاد گرفت شما هم بتونید این درس ها رو یاد بگیرید مهم نیست موقعیت ما چقدر بالا یا چقدر پایینه؟ همه ما خوانده شدیم رهبر باشیم فرقی نمیکنید که ما شایسته یا مطمئنیم همطور که معلم ما در درس امروز اشاره کرد خدا ما رو به خاطر قابلیت های ما و اینکه ما کی هستیم به کار نمیگیره او ما رو عل اینکه کی هستیم به کار میگیره و اینکه خودمون رو در اختیار او گذاشتیم که ما رو برای انجام مقاصدش به کار بگیره. دوستان، دایما اینه که درس امروز به شما کمک کنه، یاد بگیرین به خاندگی خودتون در زندگی پاسخه شایسته بدیم. باشه که خدای ما شما رو برکت بده و شما رو در دستان پرمهرش استوار نگه داره. باشه که به قدرت و آزادی درک این حقیقت نایل بشید که شما نیستید بلکه او هست. شما نمیتونید بلکه او میتونه. غالبا شما نمیخواید بلکه او میخواد و وقتی به شما پیروزی بخشید بگید من نکردم بلکه تو کردی.